Thank you. داشت کنیم داست صبت های آقای برنامید معلو مدیر اینجا ماهی سرا. خب پس حالا که مدیر تشریفوردن لطفا تماس بگیریم با مای دستور بدین اونجا رو تخلیه کنم منو کارگران می خوایم بریم مشغول به کار شیم ما این کار نمی کنیم بچه کلکل کل نکن ما شما تشریف ببریم هر وقت صندد مای سررا به نامتون خود بد بیایم من برنده اون مزایدم اون زمین ها مال منه. هر هم دلم بخواد بکن. شما مزه در با تقلب برنده شده. بی خود پرت پلا نگو. این مزخرفات رو فقط شما ها میگین، نه هیچ کس دیگه. منم صبرم تموم شده. الانم اومدم اینجا بهتون بگم جل و پلاستون رو جمع کنین از تو ما سرا بریم بیرون. ما نیستیم که از اینجا میریم. این شما که از اینجا میریم. حالا بریم بیرون تا زین نستم پلیس بیاد. من از پلیس ذات آقا مرتضی، زنگ بزن پلیس بیاد. نمیدیم که سامان رقم مزایدر به شما گفته اون زمینه مال منه. میخوام توش کار کنم شما با حرفایی که میزنیم ادرک نداری اصلا سامان رقم در از کجا میدونسته که بیاد به من بگه لال شدی تو خوب حرف بزن میگم سامان رقم موزایدر از کجا میدونسته که بخواد به من بگه وقتی از چیزی مطمئن نیستی همونجوری علکی واسه خود چرند نگو دختر من بهش گفتم من رقم در به سامان گفتم حالا از عمد کار نکردم من رو حساب اعتمادی که به سامان داشم رقع مزایده رو بهش گفتم اونم به آقای می گفته پس توی این مزایده تقلب شده مقصر از این منم خودم پای همه عباقه بهش بایم نیستم میرم اداره همه چیو بهشون میگم میگم چجوری توی مزایده تقلب کردیم من پای کاری که کردم با این نیستم اجازه نمیدم هیچ کس اون زمین با دوز و حق و کلک بخواست صاحب بشه اون زمین حق آقا پشمان بوده الان حق پدرشه هیچ کس نمیتونه مالک اون زمین بشه به جز آقای شریفی حالا بریم بیرون تا زنگ نزدن بیاد. بریم بیرون پدرت حرف زدم با خبرایی که از رامی در مورد شرکت شنیدی بود فهمیده که آرش حرفاش علکی هم نبود با سه همین حاضر شد و زودتر بیان خواسته گری شنیدی چی گفتم مگه تو همینو نمیخواستی حالا من میگم بعد رو زودتر با آرش حل کنی دیگه نمیخوام اسم آرش رو بشنوم. نمیخوام اسم آرش کنم باشه یانیچ، اشتباه کردم. واسه چی؟ دواتون شده؟ نمیخوام دیگه را حرف بزنم. هرچی بوده بینمون تموم شد اگه بچه شده این شما ها؟ از کنم. خواهش کن. من به پدری چی بگم؟ خدا رو خوش نمیاد با رنا این کارو کردی خام چهگونای کرده مگه تو گفتی میخوام یه کاری کنم رونا از زندگی بره بیرون باشه قبول. ولی اینجوری آخر؟ یعنی تو انقدر از تهدید کامیار ترسیدی؟ اوراش تو که آدم اینجوری نبودی. فقط به خاطر اون نیست. من لیاقتش رو ندارم. مجبور بودم این کارو بکنم. هیچ وقت و باره رونا رو, رو یده بودم تو خودت خوب میدونی که مسئله فقط تو رونا نیستی. پای آدم بیگناهی وسطه که به خاطر ادهاه به قتلش خود فرار کنه پای خواهر خودت وسطه آرش تو با فرار کردنت میدونی چندتا خونه آده رو نابود می کنی حالا از من گفتم خود دانی آره رای دیدید همهش اشتبایی نهی صورو نه هوا سمه سوا کامیه الان کجایی؟ همون دوارو برم ولی هنوز پیداش نشده صحب کنزوده هلا کم کم پیدا میشه. باشه منتظرم اما سلام. صبح بخیر. صبح بخیر. شوشه ایشان با رنگ پریده. چیزی نیست. باید بخوری نشتا. بشین صبونه بخور. سلام دارم ترک. خیلی خوب. قرص با شکم خالی. اشگاه امروز باید می میشدم را امینم که ارتکار کار کنه رانا چیشنشن قد به هم ریخته ای چیز اینست کارم زیاد شده خستم خب حالا امروز نرو با این حالت نمیشه از این شوی که تبریقاتیه میان خودم باید باشم اتمن نمیشه که با این حالت بخوای ببرم درمانگای جایی شاید یه سرومی چیزی بزنی بد نباشه شما که شام نخوردی؟ نه خوبم یه ماشین میگیرم میرم نه بشین من خودم میورمت بابا خودت هزار تا کار داری دیگه ولش کن حالا من یه روز نرم طوری نمیشه بشین؟ بشین یه لوگو صبحونه بخور من خودم میبرم برمت. دلم شور میزنه این طوری. دادی جان اینجا مامان. پس چرا حاضر نشدی بری سر کارت حاصل کار ندارم یعنی چی حوصله ندارم پدر پیجمان اونجا رو به تو پردام وقت میگی حوصله ندارم پس بروس تو بنا تو بخور لباسا به پوش سر کارت زیروز که اومدی نراحتی به خدا نمیدونم چه بلای سر زندگی ما اومده یه روز خوب و خوش که ناره هم نیستیم مامان جان من ناراحت نیستم بلکن تو رو خدا بعدیش اینه که شما دوتا فکر میکنین من نمیفهمم باست چی شده؟ سامان دیدی؟ چه رفتی به سامان داره؟ تو گفتی منم باور کردم چی بعد دروغ بگم مامان جان سامان دیگه جواب تلفن من نمیده کنه فرار کرده من فکر میکنم اگه تو میخواستی کمکش کنی باید به پلیس خبر میدادی اگه فرار کرده باشه همه فکر میکنن اون قاتله حتی اگه بیگناه هم باشه باز همه فکر میکنن مجرمه بازم میگین اگه هموزم شک داره سامان بیگناه. مگه متهمی دیگه ای پیدا شده مادر پس چی میگی؟ تو کجا مادر صبحونه نخورده ؟ عجله دارم باید برم ای خدا این چه وضعیه ما داری و ببین این لغو برش بگیرم گرسونه نره صداش بکن نره آرش یه دقه بام؟ نمیخوای به مامان چیزی بگی؟ چی بگم شادی جان؟ بگم قتل کردم؟ نگران من و هر روزم داره بیشتر شک میکنه. فکر میکنی تا کی میتونی بهش دروغ بگی؟ نمیدونم. چاره ای ندارم. نباید بفهمه. شادی یه وقت به مامان چیزی نگیام، بفهمه خدا نکرده شکته میکنه ها. بیشتن نگهنه تو هم. کجا میری پیش قاسم میدونی اگه این پیره مرد بفهمه تو چیکار کردی چی میشه ای ندارم تنهاست باید از زندگیش بیای بیرون به آخر حقابتش فکر کن کارم به جایی رسیده که دیگه هیچ فکر نمیتونم بکنم افتادم وسطی کابوس فقط دارم دست خواه میزنم konu bu. Daha sonra muhabbet گرمیاری میری برای من خیرتوپرد میکری نه قبر بتونم کاری نکردم که دوتا تا یا آب میرست دیگه این مادر خیلی ضعیف شدی بخورین جوم بگیرین آقا بسیار هسته درد نکنی نشجم بتونم خواهش کنم اون کتر مرا بیاری باید حساب کتاب بکنیم در چند روز یکی اینجایی سرت تو برمی خیلی زیاده بگی بابا جون بگی اگه با این موتور بیرون کار میکردی خیلی بیشتر از این در هردی پس با من تعارف نکن بابا بگیر دست شما درد نکن آقا با یکم بیرون تو چرا پنکاری؟ نیستم طوری شده اتفاقی افتاده؟ نه آقا نکنه در ارتباط با اون دختری که دوستش داری؟ خب چرا نمیشی این پلوی هم با هم حرف بزنید؟ با حرف زدن کاری درست نمیشه چرا درست میشه؟ مشکل پدرشه؟ مشکل منم توی نداری مشکل مالی قابل حل تازه من خودم میتونم تو حدی کمکت بکنم نمیخواستم حصیب بسرم عروسی بگیرم عروسین شد من نمیخواستم نرادتون کنم آقا یادش از ذهنم بیرون نمیره اون روز قرار بود که بره سفارش گلو شیرینی بده تو هستانه در وایستاد یه نگاه بهم کرد دنگار خودشم میدونست که نگاه آخره یه حس غریبی تو نگاهش بود من میدونم این فکر و خیالا چه بلای سر آدم میاره میفهم تو همدرد ولی بابا اگه مرحوم پدرت زنده بود به وجودت افتخار میکرد یه پسر با اخلاق مهربون شریف ندیش فقط اینه که تو به خودت تو زندگیت سخت میگیری آدم وقتی یکی رو دوست داشت پاشوا میسته اصول مادی اون چیزای کوچیک نباید جلو دارت باشه. عشق پسر لباس از دستش بدی یه yeah, چیزایی تو زندگی هست آدم به عزیزترین کساش هم نمیتونه بگه هر جور که راحتی و با ولی یادت باشه هر وقت به چیزی احتیاج داشتی یومن بگو تو مثل پسرمی مثل پسرم هر چی بخوای ازت کوتاهی نمی کنه حالا بعد نار با هم بریم بیرون این ماتم کده بریم بیرون دلم گرفت میناخه کمپوزیت نو بخوای میرم به جشن اینم که خونه نمیشه که کلی کار داره آرش دیگه نمیاد؟ ببین رونام من نمیخوام دخالتی بکنم ولی تو اینجوری داری خودتو اسمی میبری یا؟ تو نیست نمیخوای به من بگی بین تو و آرش چه اتفاقی افتاده؟ درسته با اومدن آرش و ها بین من و رامین اختلاف ایجاد شد بلی من همیشه حواسم بهت بود اگه کمکی ازم برمیاد که انجام بدم خان نظری از این شرکت تبلیغاتیه اومدن بگم یه روز دیگه بیام. نه، تو همین الانم کلی جا جابه‌جا کرد. اصلا خوبه واسه خودمون باشون کار کنیم. پیفین فرصت از دست بدید. بگو بیان دخلت. آخه شما که با این حالتون نمیتونین. آخه من باشون جلسه بذارم ببینم چی میگن؟ نمیتونی که 기다چو. چرا من افتون تو گوشی نصب کردم؟ دقیقاً میدونم تون چیه فقط نمیدونم شرکت اپلیکاتیه چی میخواد. این میخوان تبلیغات سه شرکت های دیگر بزارن تو حب ما یه درصد از پول این تبلیغاتو خودشون برمیدارن یه درصد ایران ما بر به تو شدی برش کن نه داخل خان فرق نه نه تو رو خونه استراحت کن من هستم نگران نباش باش باید آره خیاله راحت بشه باشه بس نمیرم باید باشه من در تو میدرکسی میگیرم آه باشی خواست باشه بگیر باشی شون موقع باش. منتظر شما نه؟ ما میرین داخل؟ خب اول میمان بگو من بعد چیکار کنه؟ شما که بفته خودتون میدونی. خب من جلو رونا یه چیزی گفتم من اصلا از این کار شما سر در نمیارن ببینین برید فقط حرفاشون گوش کنین، چیز خاصی نمیخواد بگی آخرش هم بگید و فکرام بکنم. با باشه. بخشه دقیقی نظری نمیان. نخیش یه کاری براشون اومده نتونستن بیان. خانم نظری چطور؟ خانم محترم من مدیر فنی شرکت هستم. شما باید پیشنهادتون رو برای من پرزنت کنید. خانم من چند بار دارم میام و میرم. هر بار دارم و یادم جدید رو میشم. ببخشید شما مدیر عامل شرکتتون هستی؟ بله. پرسیدم شما مدیر عامل شرکتتون هستی؟ نه خیر. شرکت ما خیلی بزرگه. من بازاریابم. بسیار خوب. پس شما یا پیشنهادتون رو به من بگید یا من بگم یکی در حد خودتون بیاد باهاتون صحبت کنه. واقعیتش پیشنهاد شرکت ما اینه که سلام سلام مادر بابا کجاست با رفت پیش دوست داشت خستش شده بده رفت نمون دوست چه عجیب من! باز چه چی دختر؟ نه دزد زد که حال ریا خب نمی رفتی دفتر. من با خودت چکار بکنیم حارها چی بود دیشب میزدی بین تو آرش چی شده یعنی چی که دیگه نمیخوام باش ازدواج کنم خوب یه چیزی بگو مادر یه حرفی بزن دخترم تو که تا دیروز حاضر بودی جونتن واسه آرش بدی یعنی واقعا دیگه دوسش نداری پس چی حرفی زده کاری کرده اتفاقی افتاده چیز خاصی نیست دعوام شده معمولات چیز گفتم چیزی گفتی باشه خودتو تو توانی نگاه کن ببین چه حالی هستی یه دعوای معمولی نیست ببین چی شده که به منم نمیخوای بگی اما تو رو خدا کشش نده باشه کشش نمیدم اگه پدرت فردا بگی اینو بیان خواستگاری من چی بگم بشه عرف رو نذاریم پلن. ما میکم اختلاف داریم با امروی حل میشه میره خب اختلاف داری چیه؟ فکر که هم بازم پشیمون شدیم مگه چقدر دیر اومدم؟ چلقه ای هست قلنمر نمشتم منتظر شما دختر دیگه سرکلش پیدا نمیشه نه آبا کامیا خیال تخت چی بهش گفتی؟ بهش گفتم دیگه سمت شما و شرکت نید از کجا مطمئن باشم؟ مطمئن باش یه جوری ترسوندمش که داشت پس میافتاد. خیال کرد بخوام بکشمش کلی الاتماس کرد خیالت راحت من پس گرفتن خونم همه کار میکنم و از این همه سال منو شناخته باشی دروغ و دقل تو کارم نیست مردونگی ها داری خونم پس میدی برام خیلی عزیزه از این کاری داشتی به خودم بگو. هر کاری حالا این دختری چیکار کرده بود اینش به تو مربوط نیست دولارا را آوردی این شاله خیله, خیله. دلار دولارا شانسی آوردم از این دلار کلی آدم پول در بردن تا ما خریدیم نصف شد برو خدا را شک کن که به خونت رسد خدا پدر شما رم بیا خب از این بعد ما دیگه با هم حسابی نداشت تو هم دیگه سرت به کار خودت باشه من کاری به هیچ کاری ندارم تا الان هم این کاری کردم فعب خواسته شما بوده پول نوشته بله بازه بریم مصاحبه. با خلاصی. مبارکیت باشه. آوا سلام علی رو بیام تو دست پار اومده یعنی چی دست پار اومده؟ سمه بچه ها رو آوردن دیگه. تو که نه رو فروختی نه ماشین رو دسته کم گرفتی منه فقط اونا نیست که میخوای پولا رو نشونت بدم ها خیلی بیتو بینم چکار گیرد. بی تو. اینم خدمت شما ممنون همین قضیه مامان تو این وضعیت دلار همینم قنیمته خب مترجم منو به کدومشون بدم نصف نصف فکر کنم فعلا کارشون رو را راه بندازه خیلی رو داری خیلی مامان باور کن خیلی گرفتارم فعلا همین تونستم جوش کنم ولی خیلی زود همه پولش رو میدم من روم نمیشه نمو بهشون بدم تا الان حرفی نزدم ولی دیگه اعتراض میکنم بگینم خسته شدم. دیگه هم تحمل کنم یعنی چی؟ یعنی همین که بهت گفتم. مثلا چیکار میخوای بکنی؟ وقتی اومدی دادگاه معلومه چه کار می‌خوام بکنم. می‌خوای ریزی بکنی؟ مردم چی میگن؟ میگن به خاطر پول از پسرش شکایت کرده. مردم هر چی که می‌خوام بگن، دیگه برام مهم نیست. مامان من دارم دل رونا رو به دست میارم. این پسره که میگفتن نامزاده شویل کرده به همزاده و رفته. بله رو ازش بگیرم عقدش کنم خونه رو میفروشم. پول همه رو میدن بزرگ نمیر بهار میاد اونا که رونا رو به تو نمیدن بعدم دیگه من خسته شدم این رو بیا تو دادگاه بذار مادر جان ممنون مامان من که میدونم شما شکایت نمیکنید من به خاطر سهم خواهر برادرم تر کاری میکنم محمودی هستم حالتون خوبه؟ آقا اون نامه رو که تنظیم کرده بودید محبت کنید به جریان بندازید بله بله مطمئنه که چاره ای ندارم خیلی ممنون از رطفتون خیلی ممنون خداحافظ سلام سلام آقا سلام آشکر سلام قاسم آقا خوش آمدی آقا من با اجزتیم تو ماشین باشه آشو با خوش آمدیم تفیق اب که اومدی حالا بیتر بود شکای کردی با خودت مریضیه دیگه آشکرمی خصوص واسما پیر مردا بالا و پایین داره همش از اصفابه میخوای از اعصاب نباشه تو خیال کنی که کم حذیت شدن از زر تو آسونه والله حق داری بلایه که سر تو اومده چه خبر از قاتل هنوز که خبری ازش نیست ولی کسی رو که برای انتقام اومده بود پیدا کرد مگه اون قاتل نیست نه نیست بعد ازور با هم دقاشون شده زنم تو زر کله ها. ولی معلوم نستش که شب رفته باشی سراغش یعنی ممکنه کار کسی دیگه باشه ممکنه حالا برای چی اماده بوده برای انتقام یه بغل مغازه ما یه انباری بوده که پدرش چنساشو تو اون انباری میذاشته وقتی که عزت مغازه رو آتیش میزنه انباری اونم آتیش میگیره جنساشون میسوزه بیم هم نبوده وقتی تو خونه به پدرش خبر میدن سکر میکنه ای داد ای داد پس بلاخره اون آتیش یا آتیش دیگه به پا کرد آره اینطور که سروان میگف البته دلیل و مدرکی برای حرفاش نداره حالا تو دنبال چی هستی؟ اون معلومه دنبال اینکه اونم این حرفا درسته یا نیست بالاخره باید یه کسی اینو تاییرش بکنه نه؟ من خیلی از این من دیگه با کسی در تماس نیستم البته می میکنم اما دنبال و کارت هستم سلامت باش. حالا خوب این جوان دنبال و کارت هست فامیلته نه کمک حالمه به سر خوبیه پس کیته این روزا احسای دستمه کمکم میکنه از کجا میشنسیش از همون روزی که پیش افتاد به بیمارستان باش شده کمکم میکنه بسر خوبی آسان جام بلاخره مواظب باش چند همی روزه جوان ها خودشون به ما پیره مرده نزید میکنن حسابی که اعتماد ما رو جلب کردن حساب بانکی خونه ما رو جمع میکنن و میرن. این جوان هستن حال این است. نیست هم خوب آدرس خونه و داری نه تا حالا ازش نپرسید نمیدونن خود دانی بل را فقط لغبطش فقطم آدم میگم دختره شکایتشو پاس کنه اصلاً والله اتفاق نیفتاده زدی پسرشو گشتی باش رفتید اینم اون وقت آدم انقدر خورد اومده هرچی از دهنش در اومدی بهت گفته هرچی بود تموم شد رفت دیگه اسمش هم نمیخوام بشنوم. بل چی رفتی تو شرکت جاویدی که رقم مزایده رو تو گفتی؟ از قاتل خبری شده؟ فقط یه بار دیگه سامانو ببینم هنوز نمیتونم حرفاش راست بود یا دروغ بود. قاسم اینجا چیکار داش؟ مرش چی بلایی سرش توی تاریکی شم آه در جریان بود زل زدم به آسمون عینکم دودی شد با صدای زنگ در یه و بارون آرید دستای خون از گل داوودی شاد ماه از راه رسید روی راپل نشست دکمه های قلب من دونه دونش بل شدن گفتم این یه ماجز است خیله شد به آسمون همه ستاره ها دونه دونه گل شدن مهربونی ایش نازنینی ایش آخریم تیکه این جورچینی ایش مهربونی ایش نازنینی خریم تیکیه این جور چینی ایش نخ باد بادکم یه جوری با میکرد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 نازانی نیه یهش آخرین تیکه یهیم جورچینی هی